بسم الله الرحمن الرحیم بنامه خداونده بی اندازم قربان نهایت با رحم. از چی چیز می از خبر بزرگ و مهم که ایشان در آن اختلاف دارند؟ چنین نیست که کافران می پندارند می‌دانند می که قیامت چیست و چنین نیست که کافران می پندارن. و باز بزودی می که قیامت چیست آیا زمین را همچون گه برای زندگی نساختیم و کوها را در آن به حیث میخهای قرار ندادیم تا زمین را استوار نگه دارند و شما را جوره جوره آفریدیم و خواب شما را مایه راحت شما قرار دادیم و شب را برای شما لباسی ساختیم که شما را میپوشاند و روز را وسیله معایشت و گذاره روزمره شما گردانیدیم و بالای سر شما هفت آسمان محکم بنا کردیم و خورشید را در آن چراغ ای قرار دادیم و از ابرهای بارنده آب ریزان فرو باریدیم تا با وسیله آن دانه و گیاه می یعنی رویانیم و باقستانهای دارای درختان غلوی درهم پیچیده را واکن روزی جدا شدن حق از باطل و گاه است روزی که در سور دمیده می شود و همه شما گروه گروه می و آسمان گشوده می شود سپس دروازه دروازه می شود و کوها به حرکت انداخته می‌شوند و به شکل سرابی در می‌آیند. آیند براستی که دوزخ کمین گاهی بوده است برای بازگشت سرکشان در آنجا روزگاران بینهایت به سر می برند. در آنجا نه هوای مطبوع و سردی را در می و نه هم آشامیدنی گوارای را می چشند مگر آب جوشان و زرداب را پاداش مناسب ایشان واقعند و قوی ترس از حساب روزی قیامت را نداشتند و نشانه های ما را به گونه بی شرمانه تکذیب می کردند و ما همه چیزها را حساب و نوشته کردیم پس بچشید سمره اعمال خود را که به چیز جز عذاب بر شما نمی افزاید. واکن واقعا برای پرهیزگاران پیروزی بزرگ است هایی که دور آن دیوار شده و تاکستان انگورها و دوشیزگان انارپستان است همسن و سالشان و جامحای لبریز پیاپی و صافی نه در آن سخنان بیهوده می شنوند و نه هم دروغی. آداش است از پروردگارت عطیه حساب شده پروردگار آسمانها و زمین و آنچه در میان آن هاست رمان خداوند رحمان است هیچ کسی استحقاق سخن گفتن را با او ندارد روزی که روح و دیگر فرشتگان در صرفها استادن می شوند هیچ کس جز آن که خداوند رحمان با وی اجازد حد سخن نمی گوید و او نیز حقیقت را می گوید ان روزی حق است پس هر کس که بخواهد به سوی پروردگار خود جای بازگشتی را بگیرد بیگمان شما را از عذابی بی می که نزدیک شده است در روزی که انسان آنچه را دستهای او از پیش فرستاده بود میبیند و کافر در آن روز میگوید ای کاش کف خاکی می بودم